و الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا رسول الله وآلها الطيبين الفاتحين المعصومين من لا يذل مخلد عادل مشمئن. اللهم صلّى على جميع مشهدین وحمّد الله. يا ارحم الراحمین. امام حضور با ساعت آن به سر رواياتی بود که در باب هکر اجرا و رشوه وارد شده بود. و توضیحات شعر کردیم باب هشته از عبواب آداب القاضی مرگون صاحب وسائل این در باید حدیث شماره چهار رو هم مردم کولمی در همین باب پرمودن و محمد بن یحیی استاد ایشان که بسیار بزرگورم ان احمد بن محمد که اینجا مراد بر اینید مراد اشعری احمد بن محمد اشعری از که از بزرگان نقومن در هر سندی که مثل اشعری رو این غالبا غالبا یکی از این به منابع انتقال خود مرحوم احمد اشعری رضا مرحوم احمد احمد احمد شون از کردم خیلی چند بار تختار که دائما در بهن. شما نشمان این جلول باید جمعونه از سال‌های 7880 تدوین حدیث شیعه و معارف شیعه است تا 550 این تولده. از تولد 850 تا حدود مثلا 390 اینها این حدیث با تعلقشان در خفند معظمش در غیر خفند خیلی چند این یه مقداری از حدیث شیعه میر توی که در اونجا پالایش میشه از در بغداد در این اسمش میشه مجلس متبر اول بغداد تونیده ام هم هست از سال 200 تقریبا به بعد تا حدی چهار سال میاد قومم این راح مکتب قوم هست. در مکتب قومم تولید هم هر نق اشاره هایقوم و قسمت بسیار زیادش پالاش و تصیهح رووارد از سال سی که من هم کنی اول مشهور میاره اینطور توزه هم هست. حدود سی تری نیاز به بردار مکتب دومون برداره. در مکتب دوم بردار یک پلاش صرف تولید نیست در این مکتل دوم، تا حدود چهارصد و پنجاه که شیخ از بغداد خارج میشه مقاسبه معروف شیعه همین چهارصد که ازگردن مکتب اول تولیده این کشماسی در کوفه هست ولی ازار این سیر انتقال معارف رو خوب داشته باشین از کجا شروع شده کجا آمده سمتکارش چی بوده از صد و پنجا که بغداد تحسیل شد از صد و پنجا که بغداد تحسیل مکتب اول بغداد تا حدود سی از سی در و مکتب دوم قوم چه تا چهار از دویستم تا حرود چهار مکتب قومه در مکتب قوم تولید هم هست لیکن تشخیح و پا پالایش هم زیاده فکر مرحوم احمد محمد مریسا یکی از بزرگان شعن ماست خودش تولید نداره ما از احمد چیزی برمان تولید نداریم یا از اشائره قوم نهاره کرده خودش قومیه از قومیه ها و اهلرهی کرده، یا بیشتر در سفر ای که ایشان به کوفه داشتن منابع افراد اراغ رو یعنی از کوفه فرسوی مثل همینجا مثلا فرسوی محمد بن سران حضر محو یا بغداد رفته مثل ابن عوی عمر یا حتی مثل به اصطلاح اون چیه واسف رفته علی بن زوبه علی بن حکم علی ابن حکم واسفی نای جگریت در از این منابع اراغ رو به قوم عمره یکی از بهترین، طبیعی‌ترین و دقیقترین و, دقیق و صحیح‌ترین میراث‌های تولیدی ما در کوفه که به عمر شیعه توسط احمد انشریه و ایشان مقداری هم از میراث خط قلوب است مثل محمد بن سلام رو هرده. چون خود احمد کاملاً دقیق و صاحب‌نظر نظره انصافاً می‌تونید این مقدار از میراث‌های محمد بن سلام پالایش شده. اینطور نیست که محمد از همیشه همش باشه توش حفظم بوده و ما این توضیحات و باز این یک جدولی گفتن که خیلی مفیده این جدول چون جایی گفتن نشده از از این بنده است یه جدولی دیگه هم کراران عرض دردن اگر خط قلوب الامایوغال از زمان این رو در کوفه شروع شده باشه الامایوغال چون نمیزه اون خیلی دوبه قلوب توش بوده داره بود بر آثار علمی خط قلوب به قطر کنی میراز های علمی خط قلوب اولین تزدینش که به ما رسیده و اثر داشته مال جابره نیدید جوزیه خط قلوب هم نه به معنایی که حتما مثلا غالب و الوحیت بودن این خط معروف شده به خط تندی حالا تندرو سیاسی بودن اقایدون شون کلمه قلوب اصل قرآنی داره یا اهل کتاب لا تقل و فیدی نکن این قلوب دیگیم جه اولین نفری که متهمه این کلامه مرگوم جاگره یعنی گفته شده ایشون شعنش هم عجله جاگره ابن جوفی که این اولین میراز های اسطلاحه حتی و این مرگاهیش هم میراز هاشت یک زمان موجود با از اون بحثی به بشن بعد مهمترینشون معلب نخونه ایشه اون هم میراز هاشم مشکل داره مهمترینشون نه مهمترینشون علل اطلاق م در خط قلوب از همه مهمتر مفضل نوامره در تولید علمه و در نشر میراث خط قلوب از همه مهمتر محمد بنسانه اینجا رس <تصفيق> خب. <تصفيق> میشه هم... من از کردن اینها رو یک شرمی دارد شون یک شرم طولانی داره من نیم خواهد باشم ما در میراث خط از آزهن یک ترموز میدنیم یک توقف میکنیم زود قاول نمی کنید چون نه اینکه اینها فعلا نبودن یا عبد نبودن یا مثلا خدای تعالی خود مفذر مفتر نماز نمی خونید اون چه چیزی که کشیراتون ها چن اجل دارن؟ این ضررای که گفتن بر باعث علی چن ایشون نماز نمی خونه عجل دارن هر طور به هر طور مثلا ایشون قالب تناسب می کنه چن عجله مثلا چن ایشون اجل بگید نماز روزه رو ایشون نسازید ببین هر حال این خط میراث غیر نقی داره حالا چرا اون دیگه چن مهمترین ناشر اخثار و میراث خط محمد بن و محمد بن سلام خط این کمتر گفتم در همه از خط قلو نمیگن همه از خط اعتماد مثلا اینجا از عبدالله الله این مصعب اما از مفضل نورا منظور خط قلو از, از زمان جادره بیزیر جعفی این حت بلوغ و شروع میشه اونا هم برای خودشون سیاسی زمانه ما نمیذنن خصوصی روزنامه دارن مجله دارن کتاب دارن که هر کدوم مخو دارن اونا همشون چیزی پیدا نشده حتی بلوغ برای خودشون و مجله و کتاب و این آثار علمی درست کردن ناشر مهم میشن محمد نسنانه و طهدی هم مثلا سهل زیاد که کی رو یک مناسبتی که جامورانی جامورانی راضی اینا جوز بوده خط بودن به بودن بلا افضل جزو از الله بوده خط اعتدار نه شن. بله این بوده هم این سنان به تو اون را داره گاه. بعضی از رباداتش کنان پدرش پدرش سنی بوده خود جوانه چیه شده ما بعضی از بزرگانمون داریم که پدرها روشون سنی بودن. جا چند جام تصریح می کنه سهل عبی عبا عبدالله پدر سنوی بوده اما معتدل بوده چیزی با تشبیه پسرش نمی بکنه پسر شده معاوی ابن عمار رو همینطوره عمار ابن معاوی درونه خود که اهل سنت یه بکنه معتدله چون می زده شیه پسر شده بزرگانه هم دولار سنان به لحاظ خط بلو مشهل نده خوب روشن سال رو آقا مصدر رو خوب امایت بفرمین این ی بعد تایید از زمان محمد مف... جابر بن یزید و خاطراتش 128 130 هم گفته شده احتمال قوی هم 128 در زمان بنی امیه به اسلام هنوز بنی عباس سلطان نشده اینها در تفکرات شیعی خیلی اثر دارن ها رو همیشه واسه ذهنتون باشه که براتون ناقطه این خط رو یه خط مستقل علمی درست ذروتشو در مقابل خط اعتدال چه در مرحله مثلا فرض اون حسین سر یه خط اعتداله سی تا کتاب در داره همین چون محمد ابن این او در داره کتاب و سلام داره کتاب و صلات. یعنی خط قلوب به موازات خط اعتدال تعلیف داره و از کردیم از حدود سال 300 یه خط قلوب مزمهی میشه این من از ابداعات بندر دیگه ما این دو تا خط رو تا حدود سال 300 داریم علیتش هم درست درست الان نمیدونیم اما اگر تقاهن تاریخی بخواهیم با کافی مقارنه آیا وجود کافی که یک مقداری از های درست خط قلوب رو مثلا نسید مثل درواز محمده مثلا مثلا اینجا اینه دو میباسه قلوب کافی به احتمال زیاد خوب درست این نکتیست میگم تا گفته نشده های صحیح خط قلوب رو ابرده صدوخ کمتر داره کافی بیشتر داره این درسته از کجا فرمید مثلا تو مثلا مثلا احمد رفیق یک کتاب ابن موسی موسیام فیزیک را بیزی دستور نقل کردید. این بزرگان بزرگدار کوفه از خود محمد بن هم کوفه تو یه ای حدیث اینجوریه کلی در قم محمد مهری قم میگه احمد هم قم احمد رفیق به کوفه محمد بن امام کوفیه عبدالله کوفیه از دیدن کوفیه خیلی روشه جو تاریخ حدیث روشه جو تاریخ خیلی تاریخ حدیث این در کوزه جزو میراس حالا ممکنی کتاب عبدالله مموسخان به نسخه ای باشه که ابنسان باسته باشه ممکن از کتاب خود ابنسان باشه عرضش احتمال ده به هر حال یک خط و بروک آمده ما در بحث حدیث اضافه بر که احوال رو باسه این سهل تاریخی را خیلی برش عرضش خواهید که باید این سهل تاریخیش هم درست باشه اگر کاملا اون کپیه देखो فلسفه روایت الان به نظر ما این خیلی نکته مهمیه البته احتمالات دیگه هم داره که الان من وارد میخوام بشم احتمال این که این تعدد خط و و خط اعتدال از زمان کلهی از دین رفتین چون مرحوم مرحوم صدوق و استادشون ابن ریید در مقابل 글로 خیلی کل بودن کلی اینقدر تندیم مثل صرح نزیاد حتی احمد از اون بیرون کرد. کلینین تو کشینه الان آمار شاد شاد شاد. بیشتر در این می شد توی مجم ها کوی نوشتهین از رو که هم می خود درست شد مجموعاً بیشتر باشه. محد مورد دا حال از صحلد نزیات نرودار بهبحث از اون بیرونش میکنه تو آقام واردش میکنه تو حت شری واردشونکن و عرض کردیم که صحلد نزیات دق میکنید دوزد میراز های حتی از صحل نزیات علم نداره اهل سنت تمام سنت رو یک جور بررسی میکنه چی آمد بین این دوتا ترم داشت. اون جایی که شخص رفته از امام نقل کرده یک حساب داره اون جایی که شخص میاد کتاب نقل میکنه حساب دیگه داره. سهل نزیاد زیاد تولید علم نداره خودش از امام نقل میکنه سهل ابن زیاد مسادر اصحاب نقل میکنه مثلا کتاب اصحاب محبوب کتاب ما تو نگا می‌کنی اون کتابا رو نگاه میکنیم اگه تو اون کتاب واژه قبول می‌کنی چه مشکل داره این خوب دقت میکنیم چون دو زاویه بحثه دو نکته‌ای در بحثه ایده آمدن ای مولانا بخشه صحیح اگه در حدیث باشه مثل سنن زاید برها هر من دیگه خیلی وارد بحث نشم خط قولو از بعد از زمان کلهی دیگه جداگانه ما چیزی نداریم تو زمان قرن یازدهم مولانا محمدگینی اثروازی رحمه که بحث اخباری و مطرح شد، نه قلوم را اعتداری بحث اخباری و حسولی و ما بحث اخبار و هم در این بحث نداشتیم در حال روایت از خط قلوم را ابن موسخان که از اجلای اصحاب هن یدیده هنه ترقد که این برادر به اصطلاح داوده فرا به نظرم توسیم شده در نیازه چون هزار و سی, سی رفات محمد ابن ملا محمد این استرابادی قال سال فعبا عبدالله علیه السلام عن البخ از بخت سآل کردن فعال هور شافل هو هنبکه مرحوم صحابت سآل ارز کردن یک شعنی که مشکلات است خیلی دقت در مرد نداری این صحابت از مشکلات این جرشون در مرد میکرد چون نشته مرحوم شیخ توسی به اصناد یعنی احمد ابن محمد گرفته. الله علیه و آله آن سو به جای بخش سوخته این نشون میده که در نصیب ما هم سال و سال کتاب کافی این وجود داره این البته شما مقارنه کرده باشید، لکن احتمال قدری اختلاف نصیب باشه در کافی کلان اگر نه این آلی در این کامپیوترش این کافیه که شما زیادی داشته باشن اون کافی کلان خدا رحمت دشمنت افرادی چه کرده توش داره کافی مسئولی که مادیانیه توش سوخته بخش نیست. ولی بله من اون اون کافی حالا تفصیل قیاسی که من نمیتونم خود میراث محمد سلام خرابی داشته يحتمه. و هر حال این کاملا واضحه که در نسخه کافی محلوم صاحب و صحاره بحث بوده چون مقارنه با تحضیب شیخ این که واضحه که صاحب قلم نیزه و واضحه اما تو اون مخبولی که من داریم اگر آین در علای نسخه کافی که تازه چاپ کردن با شموزه هاشیه مثلا در کدا از نسخه اون کتاب بخص آمده برحال بخص که خیلی مناسب نیست به سخت مناسب تره و اگر هم مرغوم شیخ توصی از الله ها از کافی گرفته باشه که ظاهرش هم اینطوره در نسخه کافی شیخ توسی هم سخت بوده پس این برمی گرده به اختلاف نسخه کافی. نسخه سال و صاحب بخش بوده نسخه شهرتوسی صحت بوده نسخه ای این که ما الان چاپ داریم این نسخه مشهور، من سهد و صاحب نسخه رو خیلی توی این نسخه ای ما هم فیلن صحته بس صحت هم پنجم حدیث تنجام و به اسنادی هم... برا؟ چرا؟ معنای نداره خیلی بازر نیم بلا و ناش اشیاء آهامات شد نازه بایی بخش ب که مثلا ای کسی صحب حق مردم رو کرد مثلا هم شاید همه صحب به عشقه یه حدیث شمایه شیش رو سابقا خوندیم دیگه تفایر نمی کنی. حدیث یوسف بن جابره که مرموم شیخ توسی منتردن از کتاب محمد ابن علیه ابن محبوب نعقی کردیم و رجلن احتاجن ناس و علیه لتفقهه یا لفقهه فسقاله هم عرشیدش. وقتی مرحوم شیخ این رو آورده به عنوان اینکه قاضی حتی اگه اجرت بگیره اونجاستن رشوه است این دیگه سکرادن تو جی شان است که خودش که ضعیف مشکلات فراوان داره غیر از اینکه اساساً ضعیفه معلوم نیست احتیاج الناس الیه در فقه یاد تفقه مراد قضاوت باشه ظاهران مولانا باب تعیین احکام و احسا و این جور چیزا باشه تمام نشه تمام بود اینم که ظاهرا و عرشفر در این رو تنزیله یه یعنی کسی باید بر احبیان احقام پول بگیره مثل قاضی که بشنید تنزیل باشه اما یه دلالت مطلب برد مطلب پیشون فرموزن روشندی حدیث شماره شش این باب رو مرهوم شیخ توصی، از که اینجا حسن حسند محمد توسی این حسن مراد پسر شیخ توصیه. عبو علی ایشان رو مفید سانی هم گفته نجف بود. شون شه خیلی که آمد، پدرشون هم بالشون آمد و این عمالی رو نوشته، اعمالی که پدرش میشه تا املا میکره حدیث، ایشون نجع، انا عبیه هنی پدرش. انا ابن مهدی ابن مهدی من توضیحاً عرض کردم مرحوم شیخ شه که توی سیکی به وقت جدیان سال چهار هشت در همون اواع ادیا از کتب و نسخ و روایات و مجموعه ها و کراری، کفرات ها نوشتن حتی از علمای اهل شننگ. مثلا در باره ایشان این طور داره ابو عمر عبدالواهد محمد عبدالله همه خلان مهدی فی سنه خلان فی منزلی یعنی شیخ توسیم تو دنشته نوشته حده سنا ابو عمر عبدالواهد از علمان سومیه فی منزلی فی سنه چار سال ده چار سال ده دو سال بعد از حول شیخ به بغداد و از سنه مرحوم شیخ که به نجفت میرن اجزه از این نوشته ها خودشون برده میشستن روم امبریه میشه میشستن این نوشتها رو میخوندن از خواب می که واقعا کار ضعیفیه نصد بشه خود تاریفه که ما تنریضا در کل معارفشی مدیون ایشان هستیم چون در همه معارف نوشته داشته ایشون کارشی میشه ایشون حدیث بخونه بینوشتن این حدیثی هم که ایشون نوشته نیراث علم اقدا است. من توضیح کافی ارشد کردم بعد از مودت زیاد بودن اصحابی که در بغداد بودن چه شیعه چه زیدی چه امامی سنی آثار ابن مودت را یکی از علمای سنی فی سنه 410 و عملی رو هم شیخ از 453 454 بعد نمی میشه الهاله کرد یعنی حدود 450 ایشان به نظر راستن دو سه سال اینا میشه کاملا دیگه ناراحت بودن چون هیچ اثر علمی هم نداشت من از خیلن در ده سال 11 سالی که ایشان در نجف بودن که به صلاح سکنه اونجا بودیدن کلن دو سا اثر علمی داره که همین امادیه که این کاری نیست که کم کردن کتاب رجاب کشید تمام آثار شیفت در فاصله بین 4-7 و 8 شاید 4 و شده و در فقدار البته ادهی از اجازات هم نجفه. مثلا اجازه کتاب تهذیب و اجازه کتاب گل، از اجازات هم تاریخش در نظر اما هم, هم خوبیش که تاریخ داره. نمیشه، اما از مجلس اول هنده در مرحوم شیر در نجات، فل غریز ثانی مثلا چهل و پنج و سی پنج و پنج و یادم نیست. پس بین چهل صد و ده یا چهل و پنج و چهل و سال فاصله. اینا همه تاریخ داره. فی منزلی به دفترات في درب في درب زعفرانی آیات منظبه نشد نوشته راخطه ابن مهدی همینش یک تزامانند دیگه بود چون خانه این محدث مرحوم جابودی اونو به اسم میدان ابن مهدی میشناختن رحله ایمیدان اینا توضیحاتی که برای علات مرحوم حافظه صادق اینا رو حث کرده میگن ابن مهدی الانم ادعی که میگن که بخوام جامال احادیث بنویسم میگن نه ولی همون خوستدیه متن کتابا رو بیا چیزی رو حث نکنید ان ابن اغده ابن اغده معروفه اسمش برده ان عبدالرحمن این آثار ابن اغده است، که مرحوم شیخ از اده از مشایح ازشون نرحب میکنه ان عبی به نظر من ابن اغده زیدیه به نظر من از اینجا حدیث یا ها... چون ابن اغده کوفیه من، و به نظر من سنی میشه از ابن عبدالرحمن وید شیعه باشه ان لیس, لیس ابن عبی سلیم که از بزرگان اهل سنته اتا اتا ابن ابي روا از بزرگان تابعینه اتا خیلی فتاواش ال... هم فتاواش و هم تفاصیلش یاد معرفه تفصیل هر تا تفاصیل آیا ان جابر جابر ابن عبدالله اتا جزء مکیه ها حساب موشه دین اهل سنت جزء بزرگان مکیه ان جابر ابن الله الانساری ان نبی صلی الله علیه و آله و علیه همار هدیه تلو امره و غلومه من چون ارز کردم بحث هدیه رو شیخ داره این بباید رو اونجا توضیح میدیم این بباید رو هم ادتری ما هیست اما حدیه تا امارا غلولون هدیه تا اعمال، هدایر امار غلولون طرال متعدد پیش اهلستان نداره بده اونجا میشه. چون شیخ الان گفتیم اجرته رشوت اجرته هدیه، از معامله محاباتیه انواع مختلف رو متعدد شده فعلا ما بحث اون تو اجرتیم علیاشی فی تفسیری جراح مدائنی عن علی من اکل صوت الرش و تو ما به این تعبیر دیاش اما از جراح مدائنی نداریم علیاشی از کلام تفسیرش انصافا روایاتی داره که الان در دیگر تها ما نرو نگذاش لكن به اثر ظاهر مصنف حدیث شماره 8 و سماع علی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و الرش او تلف او کفر بالله. من دیگه حدیث تماره به توضیح زام در دل حدیث شماره 3 اونجا سمک یونس گفتید دیگه اه... که هر کس حجام اجازه داشت هم با. این هم همون حدیث سماع است که کلینی هم آورده مرحوم شیخ هم آورده هم کامل آورده هم ناقص این فی حدیثشون ایشون کامل آورده این زید اون حدیثه که از مرحوم سایر اینجا که ذیل حدیثه آورده از کلینی هم که ذیل آورده‌ای آورده چه <تص> یک نقطه لطیفی هست این نقطه قابل توجهه مثلا از دهت فقه و از دهت مخاصر مخارجی این که مثلا نگاه میکنی حدیث سماه تو اعواب ما یک تصده اوگرده بودید دوتا هم اوگردشان سه تا او شماره زد زیدش اینجا تنها اوگرده شماره سه باز همون رو هم از ایاشی اوگرده شماره هشت وقت ما یک شمارش کلی حدیث هم داریم یعنی مثلا وسائل حدود دو سی و دار حدیثه با مکردان که حاضر سرمی شد یه بحثی هست وقتی یک حدیث واحده تیکه تیکه شده ما در اون شمارگان سراسری یکی برای شماره داریم <تصفيق> <تصفيق> مثلا اگر ما در شمارگان سراسری یکی زده بودیم مثلا کتاب و سال بودیم همش کنان بیشه دوازه احوان هدیم ایجده احوان اصلا این مهم جوابالا شلون بوجه می کنه نکرده در جاهل احادیث اصلا این روش متوصی شما وقتی معلومه حدیث یکی اسی که پاره شده این شوم همین در شمارگان تراثری حالا تو باب مثلا بگیم دو تا حدیث و رو صدا خیلی خوبیش کارنده اما در شمارگان تراثری چون یکی اسی که پاره شده یک جا کامل اومده یک جزئی نشون داده یک جا سرش اومده تو خودیش مثال اولیه یوا مش کافی. ما بیاییم همه رو یه جای کامل بکنیم در یک بابی. بقیه هم در هاشیب بسیم تخریج کامل در قرآن بها شمارگان سراسری هم یکی بدیم که بسیدیم به نحل دقیق یک شمارگان سراسری از احادی سهل مثل بکنیم مثلا ارائه بکنیم ما تارم دیگه این میبنیم بیشتر شدن از دیگه ده هزارتون شدن نرسی به زور هست بله. خودش تکرار داره. مثلا قسم در همین باب این شماره سه زده شماره 8 زده. در عوا موسسه سه شماره زده. خود باب. این شماره تو هم تو... چون این شماره ای ایشون نداره. من اساسا شماره سراتری نداره. اشتباه نشه. س... بس یوا علی جان حدیث داره س... نداره؟ وسال شماره ای سراتری بسال مرحوم موجود و مفتار موجود. مفتار و و که موجود لسالی نوشته می‌توان می‌توان لسالی می‌توان که نوشته ایشان ترازای که از از زمین چاپ ربانی که یک شماره سراسری بزنن این شماره سراسری اولین بار در وسایل از آن فصل در همچین که ما هستیم فقط ده تا ده تا است در این کتاب در این باق در صفحه بعدی صفحه سال 1650 سی و سه هزار و شیساهصد شده این شماره سراسری مال وسایل نوشته شده اما شماره اقوام مال وسائل ما من توضیح دادم وسائلم نگاه داره به شماره اعدام این اشتباه نشه خیال مفید و این واقعیت اشتباه می مثلا در همین بابه هشت نوشه فیه تسعت احادی ذرهاشی کتاب مرموم این که استخدار این آقای رفتاین استخراج نکرد اینجا زیده و مرام آقا شما مشایه برازی خدا رحمده ایشون استخدار شد گاه خود وسائل هم نظر داره گویدی شماره ای که در این حاشیه میاد با شماره وسایل اختلاف داره و اونجا مخاطب فنی حدیثی داره اگر جایی کی شما تذکر میدن این شماره گانه با خود وسایل نظر داره این یک وقتی که توضیح توضیحش ما. شماره 9 هم عهد مالک اشتره که بسیار لطیفه و نروه از این حدیث نامه مالک اشتر البته اینجا ایشون از کتاب مرحوم نقل العلاقه مرحوم رازی استخراج کرده البته نه لحاظ تاریخی در کتاب توحید العقود هست این قسمتش هم با بس... نقل و فرق داره البته توحید العقود و شواهد نشون می‌ده که فضل قبل از این... قبل از مرحوم رازی بوده قبل از بوده کاش که از اونجا هم نقل می‌کرد ایشون از اونجا نقل نکن بعد در اونجا داره وقت در حکم افزل من لا و بهل امور انسان کچل نباشه، خور نباشه، تنگ حوصله نباشه، عمر نباید که تنگ حوصله باشه. ثم قال و اکثر تعهد قضاءه. مواظبتو خود فرنده ها رو نگاه بکن، طلب بکن، به این مدت مدتی فرنده ها رو بخونید. نه به جز ازطوری میمونه که از به این خب نه اشکال. چون مرحوم محقق کرکی از به شاه تحماس به استناد، خب تو که تمام امور دولت با در ایشان باشه. ان در بعثه ولادت قریب مخصر تعداد زیادی به سر نامه شاهی بست، فرمان نامه شاهی رو فرمان شاهی رو خوندی و اونجا تحسیب به ولادت تحقیق داره. این ما در تاریخشیار ولی اینجا ای که تحسیت رویمونه. شاه تماس می‌چونم ولادت سوگفوه‌ها قرار داد. من همیم امور رو به محقق شهادی مرا دست محقق کردی که آیشهادی جناب شهادی مرا داشت محقق کرد. اونقدر تمام امور رو بیشان تفسیر کرده در اینجا در این. فرمانی آمده و معروف کهشان سالی یک بار از پیش شاکت نجفت میده سالی یک بار از نجفتیان نه و در شهرهایی را میگشتن و اگر شوهگی در بازی بود تووا مین پرونده ها رو ببینن پرونده ها گذااف رو نگاه میکنن که خکن به شرافماننظر راه نش باش اگر راست روش گید مرد بزرگبار رو فوق العادیم چون واقعا کار سختی. هضرر فرمود و اکثر تععاق غذاائعر، ل صلح و له في ما يزيه و و حاجت که ده نامه بحث هست از قبل از رزی هم در کتاب کذابه ت عبور نرو شده اما یه به تول در اوول بحثا مبط شدیم اطلاعات ما از تقلوقور خیلی کمه چون از که این کتاب در شام نوشیده به احتمالا بین همین نسیری ها یا علگی ها که الان هم در شام دارن در به بین آنها ها نوشته شده و مرحوم و تحقیل وقود مسادری که داشته مسادر اصحاب ما بوده اما انفراد هم داره مسادری پیش ما که پیدا پیش ما نیست و کتاب با این که در دور از حوزه های علمیه نوشته شده و تا قرن دهم هم هم به حوزه های ما نیامده احتمالا حدود قرن چهارم میانه های قرن چهارم نوشته شده تا قرن ده هم, هم اولین کسی هم که اس قبلدیشون نداریم ایشون اسم کتاب رو برده به نام شیخ الفقیح الفاضل استقیق حسن محمد علی ابن شعبه حرانی در تحفل اقود ایشون اولین که در سال نحصد خوردهی اسم کتاب رو برده در کل این مدت نه اسم کتاب نه مؤلف در هیچ کتاب ما نگام نه نجرشی مترسنه شیخ نه علامه نه, نه, نه ابن داودیش هست این اولاد حلم امان محق محقیل کرد این اولاد حلم یه بی رساله‌ای داره، پیشونو هر دو هم در اولش اسم ایشون بوده هم در آخرش، دو بار اسمش در آخر با القاب، در اول مصطفی با حسن محمد شیچار برمی‌اومه. اولین باری که اسم ایشان این توضیحات رو ما سابقا با کمازیادش عرض کردیم. این لعن معروف نخافت هم داره. حالا چون این مطلب از امیرالمؤمنین نقل شده و راه های دیگه هم داریم، که اینگری دیگه احوز من روی این سند عهد مالک اشتر از صحبت می یک جایی که همه منفرد به عهدنامه شد اینشالله اونجا صحبت می کنیم تره روزو باشه اونجا آق کنی در خصوص سند ها نظر شاید می شونی؟ یک کتاب واحدی که می شونی جمع کردن چون سال چهارسد این کتاب رو جمع کردن از مجموعه نوشته های مختلف فارغ از مسادای سنی است و از شیعی است و از زیدیه است حجیت دارند حجیتش منحصربعد نیست خب خیلی شوازه است و زیاده اما حجیت تام می کامله ظنهایی ظنهایی به, به خود نهج البلاغه مشکلی انصافا از شوری علمی نیست. ندارم ما نهج البلاغه رو اینطور چشماسه بحث تعبدی نداریم ما اصولاً در مباحث خودمون اولش شلو کردیم که خود امیر نوشته داشتن خود امیر هم خطبه داشتند ما به که از نهجوال آقا بریم به بالا از امیرومی آقا به نهجوال آقا و به شما اینجوریه مثل قوال و کلاتفه برهان علمیه نه اینی. حالا من چون در اون مراسل از تاریخی برهان رو نمیخوام بخار دارم فرصوی این مسئله گریشه ای برخوره ما از اونجا شروع کردیم تا آیا امیرومی نوشتار داشتن؟ نداشتن تا که این نوشتار ها رسیده چه اصنا در خطب هر حضرین، آخه چون در عرب خود خطبه یک چیزی بود در فارس نبود. اشتباه نیست ایرانی‌ها خطبه, خطبه نداشتن. عرب ها طبیعتاً داشتن و اصلا جزو که از مفاخِر هر اشیری بود. یعنی هر اشیری یک امیر داشت، رئیس داشت، یک شاعر داشت، یک خطیب داشت. اصل این رسمش بود. و در اسلام هم این رسم تصویر شد در نماز جمعه خطبه جز قرار داده شد. لذا راست حال ابی عبدالله نزیا و خود حواس حجاج خیلی خطیب تواناییه با که خوابت ما از مزگان عرب داریم که خطبای بزرگی هستن خود امامی همین خود علی عثمان نیست ولی چون که این غیر از این اصلا ما از اونجا شروع کردیم اون به پایین نری نه, نه از رو بریم به بالا بعد مثلا اولین کتابی که که خودت در جمع کردن و مثلا امام سادر و مسئله در خودتا این مسئله مهمیه ما قبل از این که درسته به, به سال چارسل و مرحوم رزی آمادیم شواهد تاریخی را از اون برشروع کردیم آیا خود این اومانی می نوشتن؟ نیمی نوشتن آیا خود این نوشتار داشتن؟ مرحوم نامرحوم به قول معروف در کتاب علم ندیب فهرست یگی من رفیعی داشتم در واسط یک بغچه نوشت‌های داشت که به خط عربی نبیصاله بود در سال 350 یک بغچه سفد کار <تصفيق> <تصفيق> معلوف صدره بودیه کتب به خط تعمیر عمومی عربی نبیص میگه بعد از فوتشون گم شد بین ورثه از بین رفت پس این فاصله 350 تا زمان رضی 50 ساله خیلی زیاد نیست فقط ما اصولا اصولاً ای راهایی که شما داریم با ما بحث مفصلی راجع به نظر بغت نتیجهش نتیجش نتیجه اینه که اجمالا مقدار زیادیش خوبه یعنی شواله داره اما همش با این ورضه موجودشون از بعد نگاه کرد و یه مشکل دیگه هم که ما کلا داریم بعضی از مصالح مثلا برایم نریطوره حساب بشه همون هم بر رسولان صلی الله من عرب نزهه العرب توی طوی توی چیه؟ کتاب معروف قرار بگیره و امیرالمومنین نسبت بده ایدبیر رسولان سلطان این کتاب چی سوادر حکمت به حکما یونان نساز بده من یک مشکل از این شبیحین عبادات می‌دونن که الان من روی اهنام تاکید نکردم شبیه این عباد به عمر هم نسبت داده شده که به دو تا به اصطلاح در شام بودن ابا ویدر که دیگه نوشته که به قاضی اینقدر پول بده که مردون انقیاز داده بشه ما اینو نمی‌خون در عباد شبیه شده این مضمون وسر لهو فی مایوزی و علته این به خود عمر هم شده نامه های دیگه هم من یه وقتی بحثش کردن قال عمر بخوام بگم خیلی ازن چیزای دیگیری هم دارن که سنی‌ها خیلی اموش مانو دادن اصلا کتاب اعلامون موقت ابن قیم جز کتاب واقعا مفیدی امم انصافا نال عمره ابن قیم بگم ببین الله تازه اون این اعلامون موقت اینه شرح نامه است که عمر به شرح نوشه دادن ما داریم ده سنه حالیه چه گنده است اصلا ها چرا ما برای اواز... نه اینه ما یک شگر... حالی ما در کتاب قارات که در قرن سوم نوشته شده اول قرن سوم آراث ثقفی ایشون در جلد دو اومدن خلاص چی از این شد که اینجا بودیم خوندن یه نامه علی بن به معاویه اونجا قاراف نام نمیبره باسن میگه که خون این اول حسن خیلی علم بعد گفت اهلشان نفهمن چون میخواست پسه پشت نشین گفت پس به مردم اینها مالا ابو و عمره در خزانه اونا بوده علیه نرویسه رو رو جا کرده تو تصریح میکنه میگه برای این که این از این ریشه دادی که مستدی بیشون نفس تاریخی بره این کار رو معاویه شو بکرده در کتاب قاراس سقفی جلد دو این شای امرو در عمری ایشون در که معاویه دیگه نردم چوب نفهمم چه عبدالحذر داره چی بعد میگه بله اینا در خزانه بوده مال ابو بکر اصلا این نوشته مال ابو بکر عثمه علی ابن ابی طلحه رو چه صدقش تخش کرده ولی مطلب ایشون هم اشتهار دید این ریشه تاریخی از زبان معاویه شده این مشکل یک مقدار مشکلی که ما داریم اینه خب باید حلش بکنی واقعا باید دنبال خزانه تاریخی به نحوه کنم که چون از علی بن ابی طالب به دیگر نقل شده من فعلا رو احداثه خیلی مانو نمیشم جزیره کنم های در این کتاب جامل هم این چه این جمال احادیث آی این جلد اخیر رو برضو مرحوم ملایری مرحوم مایزه احمد الله شاید برجیده همه جلد اول ناظر اینا دیگه بعدش انسان جمع کرده اصلا قسم حال به اسم شده ایشون در جلد در باب در باب چهارده اما حباب ازولش موارد از فرقای شاپ حباب قضا منده خود حسب این سفری در چاپی که من دارم حساده هم ایشون ربایت روشی رو آورده و انصافن هم خوب آورده یعنی انصافن بیش از نبایت صاحب, صاحب و استیابش نسبتا خوبه اولا آیه مبارکه آورده من توضیحات و کرارن عرض کردن یکی از نظرات مرحوم آی این بود که ما بیا در قبل از هر باب رواست باب آیات را هم بیاریم یعنی از اعتراضات آی برو این آی مرحوم آی افتهی نمید کردن از خواب درجین یک وطایه بودن باشد نفر بودن که این تدبین جمال با اونا بلاشتن به شرح این دست که خود آی برو جدی هم با سؤال میگن کجای مثلا حدیثی مشکل چوری یا حدیث اینو کجا بگذارن که توضیحاتی که ما ارائه میدیم باعث اشکالاتی رو با که مرحوم آی گورو چیدی به رسائل داشت یکیش این بود که صاحب مسائل رئیاسو نآورده بهار داره بهار اول هر با آیاسو داره تفاصیل داره تفاصيل سمیام داره چیز دیگه‌ای هم داره از بگزاوی اینا ندارن اما سالورسای ناریشو نظرش این بود که بهترین این است که ما در اول آیاس هم بنویسیم این ابداع مال خدای گورو چیدی ایشون یه مقدار سماعون که از اکارون دست این مقدار آیات آورده تو آیات رشده نیست بعد ایشون خیلی عجیبه خدا رحمتش کنه اون آیه اصلی رشده نیورده ایشون آیه اصلی رشده نیورده اون آیه اصلی رشده, آیه اصلی رشده لا تأکل و انوالکن بینکن بالباصل و تدروبه ها اول حکام این نیورده دو تا آیه آورده که توش کلمه صحب هست سه تا اولی که هست و خوب کنی نکردی اگر در نصر خودتون اضافه بفرمید آیه اصلیه رشوه و تود روبه ها الهوکام این صفحه هفتاده, هفتاده هفتاده این چاپ بیکیه من دارن این چاپ بعضیه به چاپ این چاپ اولش 26 جل بود این چاپ دوبه که 31 در جلد سیون صفحه هفتاده هفتاده خب بیشتر جمع کرده حالا بس اونی نخواد تخمی داره در اینجا چند بعد روایت شمائره آورده رو که خوندیم شرح مفصلی دادیم دیگه نمیخواد تکرار بکنیم بعد روایت دارالم اسلام حدیثی رو از دائم آورده که در کتاب ضایم نمیشه درجی که در دائمون مفصل صحبت کردی بلا اشکال دائم از مصادر ما گرفته اما انفراد هم داره یعنی احادیثی الا ما در دائم که در مصادر ما نیست اما عمده کارهای از مساجده ما نکته بسیار مهم میرن در روی دعایم ارز کردیم ظاهرا صاحب دعایم مقید به شرایط رواست هم نیست اصلا سماع باشه قراعت باشه نیست ظاهرا اعتماد جلد اعتمادش به جاده هم این هم میتید از عجایب کار صاحب دعایم نستانه هم که مرحومه وجيه دوینیش شیعه امامیست باطل است چون قطعاً از بزرگان اسماعیلی، خواجه‌گذاد دولت اسماعیلی نه واقعاً زوره دی حالا می خوازم خواجه‌گذاد 611 ه.ق از نوجه یوسف که از این صحیده ی که حالا گفتم که یعنی چون شیعه برخلافاً درشتان ساده شیعه, شیعه از الان شیعه کی من از خودم دارم و هو صاحب حواله شده و کتاب الحفش شریف میگه با ما الان دارم میگم من اسماعیلی هستم شیعه ما در دوازده امامی نیستم بعد مشتاط داره رو دوازده امامی, امامی نکنم قال علی السلام من اهل صوت الرشات و الفخ این من اهل صوت الرشات و از هر ما الان مسند نداره الان خود جواهر مدائن در عیاشی بود یک کتاب دیگم آله مرسل ایشونم داره پس این اصله درسته قیل یبن رسول الله این ما نداریم این زیادیه قیل یبن رسول الله و این حکم برحق و این حکم بر برحق این زل رو ما نداریم از کردم کتاب داره این روز میراسای مصری ما نداریم میراسه های مثل ما فوق العاد زعیف هست شون اصلا من رویشون رسیده هست کل میراسه های مثل ما هم دو تاسی که دعایم از دعایم از دعایم میکنم جهبری هست هر دوشون هم مشکل دارد این قیلی از رسول الله و این حکم بالحق این رو ما نداریم آل و این حکم بالحق و امال حکم بالباطل فهو و کفرون این هم خیلی هست این نداریم اون رشافل حکم ها کفر داریم شاید دیگه رو باید استیناس کرد که اجرت هم باطله ما, دی... ما خود ما عجر نداریم کنید و خوندیم دیروز رو باید خوندیم دیروز رزق داریم عجر نداریم رشافل حکم داریم این به این حکم به هر حق شاد چامل عجرم بشه اجرت کون میگه و غذابت بکنه. و اما این که و اما حکم به الباطل فاق و کفرون در بین ما رشافل حکم و کفر. زیرا ل... الله عزوجا به ما نازل فرمود که اون تام آواخر تمشون از ما. ما خیال کن تمام اون بابا می خونیم فرض ان شاء الله. اون کار. خیلی کتاب جان احادیث یه مقدار زیادی از روایات اصحاب از ها ما که از صحنه علمه هست شده خیلی خوب اطلاع در اونها خیلی بود. مثلا ببینید این روایت از صحنه دین ما. واقعا انسان دائم از مقصد بمونین الان صافه